سلام، علیکم سلام، آلیکون. صبح بخیر. صبح بخیر. خوب و خوب سلام و می‌خوام. سلام سلام سلام قلبان خوش آمدید غالبن خوش آمدید herzlich willkommen غالبن خوش آمدید غالبن خوش آمدید خوش باشید خوش باشید Angenehm. خوش باشید. خوش باشید. چطور هستی؟ چطور هستی؟ Wie gehtest dir؟ چطور هستی؟ چطور هستی؟ چطور هستید؟ چطور هستید؟, هستید؟ Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch? چطور هستید؟ چطور هستید؟ بسیار خوب بسیار خوب sehr بسیار خوب بسیار خوب به کلی خوب به کلی خوب ganz به کلی خوب به کلی خوب ما خوب هستیم ما خوب هستیم اس گیت ما خوب هستیم ما خوب هستیم خیریت است تشکر خیریت است تشکر Alles in Ordnung, danke. Chayirat ast, tashakkur. Chayirat ast, tashakkur. Badnist. Badnist. Nicht schlecht. Badnist. <lacht> Badnist. Waschumab. و شما und و شما و شما تشکر من هم خوب هستم تشکر من هم خوب هستم دانکه، es geht mir auch gut تشکر من هم خوب هستم تشکر من هم خوب هستم کاروبار چهطور است کاروبار طور است Was macht die Arbeit das Geschäft کاروبار چهطور است کارو چطور است